حکایت ناخوشآوازی به بانگ بلند قرآن همیخواد صاحب دلی و رو بگذشت گفت تو را مشاهره چند است گفت هیچ گفت پس زحمت خود چندین چرا همیدهی گفت از بهر خدا میخوانم گفت از بهر خدا مخان گر تو قرآن بر این نمدخانی ببری رونق مسلمانی